بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله انده آمین و صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله و آله الطیبین طاهرین المحصول و لعت الدائمت علیه دائه نجمعی اللهم فعلا جمعی مشکل و رحمنا به احمدتی و رحمه راحیم بحث در باری حفظ کتب زلال بود و به تحبیر مرحوم استاد و جرابه ای رو که قرار داده بودن روایت تحفل اغول بود البته مرحوم استاد در همون ستفاق مصباح و اون چاپ قلیم نجف جلده ایک تحفه دی به عنوان و جرابه سه فقره از کتاب عزبت رو حضور اغول و به تکی تکی که همه رو باید این بسمتش که من دروز همه رو یک جا جدا کردن و بعد هم از هر کدوم جواب خاص خودش دادن مثلا اِن محرمه اللہ حسنا عطلت یجی و من حل فساد به دعوه ان مفهوم الحس یفتزی حرم حسنا عطل محرمه به جمیع منافعها و من حل جواب و فی انه حرمت سنائلا تو لازم ابقاء المسموع بین خیل و ابقاء اون عمل تلازم نیست کما تقدمه فی مبحث ابقاء صبر المحرمه یعنی ممکن است یک عملی حرام باشه اما نتیجه عمل مشکل لازم کشیدن تصویر حرامه اما ابقاء صبر حرام نیست و لذا منافض نداره که مثلا نوشتن به زلال حرام باشه ویلون لگین یک چونه کتاب هم ایدیه این ممکنه خود عمل حرام باشه اما حالا این کتابی رو که نوشت نگه داشتنش خونه لازم نیست حرام باشه همچنان که تصویر حرامه به اصطلاح ابقاء صور و ابتناع صبر از سابقا حرام نیست این است که ایشون فرمودن ایشون قاعد ما صدر الله علیه به تعلیف کتب زلال استنصاف آمدن به صدق صناعت علیه ولا صدر الله علا حرمت لعبقا اما عبقا حرام نیست من عرض کردم سابقا در اگه یادم باشه در بحث صبر این بحث هست یعنی مطلبی که ایشون فرمودن این مطلب فی نفسه کرارن و مرارن در فقر بحث شده این یکی اصلا یکی از اهدافی که فقر تحسیل شد همینه یکی از اهداف فقر در دنیای اسلام و از خلی در معارف دینی ما تقریبا از همه زودتر فقر تدوین شد یا فقر شاید تفسیر مثلا فقر از همون نیمه های قرنه اول تدوین شد یعنی خوفت شد فقر اینطور نیست که حدیث از قرن ثبون مدرون شد اصول اواخر قرن دوم مدرون شد اما فقر از همون قرن اول مدرون شد مثل تدوین فقر از همون قرن اول بود فقه های مدینه از همون اوائل فقه های مدینه از همون قرن اول به خاطر احتمامی که مستد و یکی از مباحثی که همیشه در فقر از زمان صحابه به بند محرح بود که بحثیست که ما هم بهش لوازه میگیم این همیشه مثلا بود مثلا اگر دریلی آمد که زن میتونه روش باس کنه مثلا جروه پدرش آیا لازمه شیدی که اون میتونه نگاه بکنه مثلا دخترش درو پدرش یه جروه برادرش تلازم وین یک حکم حق با حکم دیگه اینی که از محصه بسیار شایع فرده مثلا در باب قواهد ننسا اینطوره فلیس علیهن جنون ان یپهن سیالهون لباسشون رو بردارن خب سوال این بود همه که برای زن جایز اون لباسا رو در در, در در رو تفسیر کردن لباس یعنی شال شالهشون بردارن چون شال که برای زن نصف دست دیده نمی‌شد چون نصف دست با زرد با در یام شاشه اصلا میشه ماکسیو با اونی پوشوندن نصف دیگهشم با شال خب میشه به ساق دستتن نگاه کردن زن اجازیه اون اونی که در قرآن آمده و سیابه بکنه. اونی که مطلوب بود جواز و نظر محلوب نگاه بکنه مثلا این بحثی بود که از اول از یکی از ارکان بحث این تلازماته مثلا همین که ایشون اشاره فرمون این مثلا ایشون درسته مثلا سهیه همه مثلا تحریم صبر کشیدن صبر و تفسیر حرام اقتناع سوار چیزی عکس دید ارس نگه داشتن سوار هم یا نه؟ مثلا روایت آمده که زن میتونه فقط در بازار کنه روش باز مثلا بعد از یه خورس صورت رو بیرون بگذاری یا درست رو و جو کفه مطرح میکردن حالا که میتونه این کار رو بکنه آیا میشه مثلا مردم بهش نگاه میکنه این ما در کتاب خودمون قالبا تحبیل به تلازمات میکنیم حالا خود زنده تعبیر به تضادات سنخیت یه بحثی هست که خود قانونی توی رئال اسقراطات قانونی یا توی رئال سهم عرفی حالا یا عرف ها یا در رئال اسقراطات قانونی که خاص بشه یه نوع ملازماتی داره وقتی گفتن میشه سؤالش باز کنه پس لازمهش میشه نگاه کرد مثلا اگر در قاعده اهل ذمه آمد که میتونن کلیسا داشته باشند این اینطوری مطرح میشد حالا که میتونن ا کلیسا داشته باشند آیا یک بنای مسلمان میتونه عجیب بشه ونجا کلیسا بسازه با اینکه بیوط عبادت مبتدع است این اصتلاحا همون بحث تلازمات من ارز کردم بحث تلازمات از مواهد بسیار قدیم در فقه نهایتش اینه که در قرن دوم چیزی که تازه پیدا شد در قرن دوم اواخر قرن دوم سال 167 ولی یواش یواش اون تلازمات رو تقسیم بندی کردن یه تلازماتی که در کل سریان داره یه تلازماتی که در مسائل سریان داره خاص در مسائل خاص اونی که در مسائل خاص توپر گذاشن اونی که در کل سریان داره علم جینی تاثیر شده نا او اصول اونن که اصول مثل تلازم بین وجود بشه مقدم مقدمه هشون این آوردن تو اصول ولی بحث اولی تلازمات بود وقت این تلازم مثلا تصویر با اقتناع اصطور این توفه گذاشتن تلازم بین تصویر تلازم بین این که اهل مسیح میتونن کلیسا داشته باشن خب اگر میتونن کلیسا داشته باشن برنامه مسلمون میتونه دارد این کار بکنن. این همون بحث تلازمات و این بحث تلازمال از یکی که از مواهد اساسی و ریشهای در کل فکره سنیشی، ایزهی، ای، خوارج و هر چیزی که فکره در اسلام یکی از جایز سیارمونه و همین تلازمه و اصلا نقطه اساسی این بود که بعد از این بعد از وحبات فیغمبره اصلا نگاه کردن اون موضوعاتی که حکمش در قرآن یا سنت آمده فرس کنی مثلا چیز رو ده در قدره نه برد درستن حکمش نیامده دنبال اونا افتن که حکمش نیامده این فیض درست شد. فرض مثلا داره که خوردن شراب حرام خب ساختن شرابشی فروش انگور به کارخانه شرابشی رفتن انسان پوش راه بره تا اونجا مثلا حمل شراب با واند واند داری شراب باشن حمل انگور میخواد واند انگور ببره برای کارخانه شراب ببینید دهها موضوع درست شد. اینا آمدن این موضوع اصلا به یک نهدی به یک رادیانه که من نمیخوام های مختلف بشم این رفتش شدن و براش احکام پیدا کردن اون جایی که کلی بود اسمش هنوز اصول این از قرن دوم شد از قرن اول هم بود اما جدا شد شد علم خاصی به نام علم اصول بعد امروزه منم بحث مثلا شده الان جریان دیگه وقتی که بکنم مثلا بحث مقدمه واجب رو آوردم به اصول اما حرمت طول اعانه که علایه اسم بردن تو فکر اولا بحث مقدمه واجب خب معلوم در فعل خود انسانه این واضحه بشه را بحث مقدمه واجب یعنی انسان یک کاری که مقدمه فعل خودشه اصلا گفت برو نام بخر بازار رفتن مقدمه فعل خودشه اصلا بحث مقدمه واجب در فعل خود انسانه بحث اعانه بر فعل غیره اشتباه نشه بحث آنه اسم این است که شما تصور بکنید یه گناهی از شخصی صادر میشه درست یکی ده اشخاص در سلطله طولی این صدور این گناه قرار میده. میشه این رو میشه یکی انگور میخره میرد در این آقایی یکی میبره مثلا از توی کارخانی یک نحو خواستی اون رو لح میکنه یکی پس به ماده روش میزه یکی یعنی یه مقدمات که انجام میدن تا این انگور برای این شخص تبدیل به شراب بشه و درسته جور بلا مثلا مخواد استعمال بکنه پس بحث آنه ایس بر ایس میگه چه نقطهی شد پس میگن اگر انگور رو شما فروختید به کارپون شراب حرام است. رو چه عنوان؟ عنوان آنه بر ایس. خود شما رفتید مثلا سوار کشی شد این سوال ماشین شد این یک شهری هست جلاله برای اینکه شراب بخورید این فعل شما حرام است و عنوان مقدمه حرام این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنه؟ البته اهل سنت یه عنوان دیگه هم به قول بعضشون یک دلیلی هم بر ادله شرعی داره که سد ذرایعه که سد ذرایعه یعنی وسیله. صد و وسائل. این سد ذرایعه هم مقدمه حرامه ها چیز خاصی نیست عنوان بیجیسو نکنه صد و ذرایه یعنی اون چه که معدیه به حرام میشه شما جلوشه بگیریم ذریعه از اون ادال حرام ذرایه حرام رو جلوش بگیریم خب سوال شد برای شما این باشه چرا یکی رو تو اصول برده یکی رو تو فقه بحث آنه بر بعدها طفل سطوراتی که پیدا شد در کتاب اهل سنت به عنوان الاشباه و نزائر ازش ازموردن در کتاب ما مثل مرمان فاضر و مرداد بانان قواعد فقهیه ازموردن یک چیز بین وسط می شد بین اصول و بین فقه و من در بحثه اخیر هم چند یکی دو ماه پیش نرم کدم استاد هم در این مصباح دارم در گاروته مسئله اصولی که کلام مقومنهای نیست لیکن شون عبارت مصباح بازدن بود ما توضیح دادیم و حالا اینجا توضیحش ارز می کنم. مرمون نایمی یک ذابطه ای داره بین قائده فقهی مثل آنه و بین مسئله اصولی هر دو رو هم قاعده فقهی هم مسئله اصولی مسائلی میدونن که نتیجه اونها کبرای قیاس واقع باشه یعنی کبرا قرار بگیره و قیاسی باشه برای استنتاج حکم شرگی هم باشه مثل فیزیک و شیمی و حیعت و نجوم نباشه اون حکم شرعی هم فرعی باشه مثل اقای دونینجور چیزا کلی نه اصولی نباشه پس هر دو مثلا مقدمه واجب واجب یا حرمانه بر اسم حرام هر دو کبرا واقع میشن در قیاس قیاسیست که نتیجی بود استنتاج حکم شرعی است لاکه اگر حکمی که در میاد شخصی باشه قاعده فقری است کلی باشه قاعده اصولیست مسئله اصولی ایشون هر مسئله اصولی رو مسئله ایم زنند که نتیجهش کبرا قرار بگیرد در قیاسی که برای استنتاج حکم شرعی فرعی کلی آیده فرعی م... مسئلهی که نتیجهش قیاس کبرا قرار بگیرد در قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی این دفعه میشن و آخریش اگر گفتیم مقدمه حرام واجب، مقدمه واجب واجب, واجب کلی ما کلی است فلان فعل معین اما اگه گفتیم آانه بر اسم حرامه میگیم فروش انگور به این حرامه چون مصداق آن ببینید اونجا عنوان بشیم فروش انگور به کارخانه شراب حرام چرا له حرمت آونت عربی حالا اگر بخونی یه مقدار واضح صحبت بکنی غیر از این اصطلاعی که من روی نایینی چون از کنید مسئله حرمت و در این موارد در فیر بودن آن در اصول در اصول هم دقت قصد رفرمایی تو مقدمه واجب یا مقدمه حرام این بحث مقدمه واجب هست که کل مقدمه واجب واجب میست مقدمه موسله خصوص مقدمه موسله حرام واجبه و مراد از مقدمه حرام اون مقدمه حیر که اگر انسان انجام داد بعد یه حرام مرتکل میشه اون مقدمه موسله حرام و الا اگر بلند شد و از که نخورد این مقدمه حرام نیست اون مقدمه موسله اگه خالب حرمت هم شدیم اون مقدمه موسله حرام اما در باب بکنید، اونا دنبال ایصال نبودن در نظام اونجا بازن صد و ذرایه اونم کلیگ هر هرچی که ذریعه بشه برای حصول به حرام اما در اینجا کلی به اصطلاح عنوان دادن یا به عبارت دیگر عبارت که دقیقه در بحث مقدمه واجب ماده ندادن دادن به اون حکم عنوان دادن مثلا, مثلا عنوان مقدمه واجه عنوان مقدمه حرام نگفتن بازار رفتن ماده رو معیین نکردن یا به تعبیر متعارف ریاضیات یک نوع تابع متغییر گرفتن که مادهی توش مفرح نباشه تابع اون واجب باشه اصطلاحا طبق اون واجبی که متغیر میشه این تابع اونه یک نوع تابع متغیر گرفتن یه دستان اصلا میگن دوی به اضافه چهار مصوریس با شیش اینجا ماده داره اینا میگه x به اضافه y یه متغیر واجد مثلا یا الف به اضافه دو اونصت با جی. اینجا ماده نظر، اینجا تابع متغیره این الف به اضافه به مصائس با جی. این میخوره به دو به اضافه ش مصائس با ش میخوره با ده به اضافه بی مصائس با سی. این متغیره یعنی عنوان نداره یک حساب خاصی نداره میشه در هر عددی رو به جای x و y گذاشت قرار داد اما اگر این دو به اضافه ش مصائس با ش دیگه عددی نمیشه قرار داره. حقیق عزه ما ایگره. پس چطور شما این دو سا جدرگ رو با هم دیگه فرق میذارید یه درست میگید به اضافه چار مصدیز باشید یه ای درست ایک ای به اضافه یک مصدیز بازه این به هزاران عزه میخوره منحسر نیست. می. بحث اعانه بر اسم سه همین مثل دوی به اضافه چار ماده داره بحث مقدمه هرام ماده نداره عنوانه ما هر عنوانی که برای صد مقدمه حرام بکنه یا هر عنوانی که برای صد سطح... و لذا مرموم شیخ انصاری هم تو بحث مقاصد اگه باز محاطب محاطب محاطب محاطب بحث دونوش دو خسم دو یا سفا گفت فعلی که منشعنی هی هنگیتر اکتر به حالی یخصد به حرام منشعنی این منشعنی همینه بعد آنه برای اسم زکی یعنی اینجا میاد میگه فروش انگور به کارخانه کارخان فروش انگور اما همین انگور رو برای شخص نمیگه تبدیل انگور به شراب میگه تبدیل انگور به شراب اگه تو انگور رو تبدیل به شراب کردید و خوردید این معدنه یه حرام حرامه اونجا دنبال عنوان یک فعل معین نیست اما تو اونجا رو باید با باقت نظر زبا دنبال فعل معین نیست پس بنابرای این خوب دقت بفرمایید که اون تلازماتی که الان ما میشه اینجوریه اگر این تلازمات روی عنوان خاصی بره مثل عنوان اعانه برگه من شما مثلا الان عمل شراب رو به این کارخانه انگور رو به کارخانه شراب فروختی اصلا بعد زلزله اون کارخانه شراب کلا خراب شد انگور شما شراب نشد خود عمل شما حرام بود نه که به دنبال اون بحث نروید ما این معنی اینه که اینجا ماده بره اما اگر هرشین رفت که خونه کی دوزی مقدمات مقدماتم انجام داد در از خدا خالی اون شخص رفته بحث این دی مقدمه حرام نمیشه اینجا حرمت نداره مگه با عنوان قصه حرام تو بحث تجاوز کردش تو بحث تجربی اشاره کردم که این روزا چیه غیر از این که بحث مقدمه حرام در فعل نفس است و اعانه بر از در فعل غیره اصولاً این بحث فقهی حساب و حساباً خیلی دقیق است خیلی در طول این سال اده از یک عجیبی رو کردن ما در قوانه جهانی هم مطرح بکنی، ما دو تا بحث قرار داریم یکی رو اصول قرار یکی فکر رو داریم یعنی بر رو اخصاص ما هم دردارم که ما مورد شیعه توی ابن قدامان هست و آنه یکی ما مطرح شدن روی یعنی بر مطرح پس اصل بحثی که بود آن تو استاد مرتضی که مالش خارج شدیم بحث تلازم بود که ایشون فهمید تلازمی بین تحریم شی و تحریم ابقاء شی نیست سوال این الان آیا تلازم و تصانخی ما بین تحریم تصویر و ابقاء صوَر هست یا نه ایشون زاروال نیست الا به همینه ما حرم الله الصناعه ایشون میگه پس نوشتن کتاب زلال حرام اما اصفاد نمیشه که از هم حرام این خلاصه هر با استاد جواب شد جواب نه توضیح آیا اینجا تلازم هست؟ این مطلب در بین فوقهای ما نیست تلازم در تصویر بینشون تلازم نیست لیکن بحثتر اینه این تلازم نبودن به خاطر نصوص خاصی که ما داریم چون روایات داریم چون روایات داریم که عمر تصویر مثلا در روایات عمر تصویر در پیش اصحاب اشکار کردن گفتند نداره روایات عمر تصویر داریم و روایاتی که عملا سوء در خونه نگاه می‌داشتن خود زبان پیغمبرم بود حالا بعضش با مثلا پیش همون واژه معروف عایشه که طرز آویزون بود پیغمبر داخل نشد اون طرز تبدیل به روی جوشک مفکا کرده مفکا مخده رساده حضر داخل شده خب داخلی صبر افغا... که شده حالا حالا فرسون روی مخده باشه یا آبیرون باشه پر. اون بحثی دیگه نیست پیلزا ما در روایات خودمون داریم اینجا مشکلی که مرمومه استاد داره اینه که این بحث باید از دار قانونی بررسی بشه آلا در روایات باید قانونی بین این روزا تلازم هست یا نیست. من کردم ادهی از احل منتظم به تلازوم به این دو سال ادهی از احل تصویر و ابقاء سوار تلازوم قائل هست ولذا ادهیشون گفتن همین که تصویر حرامه ابقاء سوار حرامه چون تلازوم قائل هست ادهیشون گفتن نه ابقاء سوار حرام نیست چون ابقاء سوبر حرام نیست تصویر هم حرام نیست رواد تصویر هم در کراهت کردن یعنی این قصی تلازم و تصانخ رسان چی بود؟ این قصی تلازم و تصانخ قوی بوده آمدن گفتن چون ابقاء سوبر پیغمبر این خونش اکت بوده خب رواد زیاد داره چون ابقاء سوبر به قصیل مخواه بگه چقدر تصانخ زهنی قوی بوده؟ میگه چون ابقاء سوبر جایده پس روایات مثلا لعن الله المصدرین روایتی در باب آمده و وعشد الناس عذاب یوم قیامت المصدرون یو یا المصدرین یا ان عشد جنات چون که بحث لغوی امم اینجا در نحوی ما و نحوی سنه نظر می‌خواهید بشن و ساقن اشاره کردین این روایات رو حمل بکنین بر به اینطور چرا و اون عذاب را هم حمل کنیم بر اینو عذاب نه اینکه عذاب باشه حالا قرردم میخوام بگم که این مطلبی رو که مرموم استاد فرموزن تلازم نیست چون در صورت این تلازم نیست این ابتداعا جوابش واضحه صورت روایت داشتیم اونجا چون روایت داشتیم خب طبقه نه تعبد همه معلوم مضافحا به این که من احس کردم در واقعه صورت این روایت شدیده ای که اهل سنت در تصیده ما نداریم این تو زیادش که یه ذکر جز بر از این این مخلی روی که استاد فرموندن اما به لحاظ اعتبارات قانونی اغلایی اینها رو واقع نزد بعید نیست که در این جور موارد با لسان دریم بررسی بشه بایی یک هران ای شدیده برید نیست که تلازم باشه به این هر دو. و اون روایدی که اصلای منبر نخوب که شما هم باز متاسفانه سرد نداره که شهر سنت داره لعنه رسول الله یا لعنه الله الخمر اشوره اشاره به ده همین باشه که خمر اینقدر مبغوزه که حتی مقدمات بعیدی او کسی که الان قلمه‌ای درخت انگور رو میکاره که عادت هم ممکنه سه سال دیگه انگور بده اون عملش هم حرامه ها باز در روات ما هم مختلفه بعضی خارسا نمیانده این بحثا قبلاشون بحث روایج اینجوری متفاوض هست به هر حال خوب دقت بفرمایید ما بیاییم بگیم انصافاً مختلفه انصافن وقت انما حرم الله و صنع اتلتی یه هل فساد و مهزن بگیم مطابقه با استقاضات و اغلایی اگر یه جی اومن هل فساد و مهزن همه مراقبش حرامه ابقاعش هم حرامه نه این که خصوص ایجادش حرام باشه این یک نقطه یه نقطه است که من کدارن تو برسه مخاطب محرح کردم و کدارن از کردم و اون که بیایم بگیم اصولا در این شدیعت مقدسه شما ما دو تا حرام داریم یکی اونهایی که در قرآن حرام شدن یکی اونهایی که بعد رسول الله به سننش حرام فرمیدن بیایم بگیم اونایی که حرمت اسنادش الاللهه این جمعی مناطبش حرامه یعنی حرام در عوضی دقیقت با اون یا آمن محرومیته شما به جمعی امراضه و از اون محرومی مثلا اگر فرمود در قرآن همه اخرما من میته یعنی حرام. از همین دردی یاریم نجسته از همین حرامه دردی یاریم نجسته از همین حرامه دردی یاریم که بهش جایز نیست از همین حرامه دردی یاریم که انتفاعشان جا... جایز نیست از همین حرامه دردی که، نگهداریش هم جایز نیست از همین تمام را بگیم این حقیقت این شریعته نه در تمام قوانی بیاییم در شریعت مقدسه ای ما اینطوره. مثلا در روایت آمده که سوا همه حرام هم مثلا گرگ بیاییم بگیم بین گرگ و خینزی فرق میکنه بین گور با میته فرق میکنه جواره و تیرم حرام هم محرمات هم مثل شاهین و کرکت اینا بگین بین جواره حوتیر با کوک با میته فرق میکنه این دوتا وانگه فرق داره میگه نه میگه پیغمبر از طرف خدا به این معنا که مبدل نیست خودش جعل میکنه چون سنن ما اینجور معنا میکنه پیغمبر خداوند به حق جعل داده یعنی یک مقداری از طرف خداست یک مقدارش خودشون در شب معراج هم تمام حوار الهی با ایشان منکشف شد هم نفس ایشان یک ای پیدا کرد که مصالح امم توی طبق مصالح امم خودشون جلبه داره روایت داره خب بنابراین واسه تقیه یعنی اگر من اگه مثلا در عده از روایات بین این گذشته اثر گذاشت همونطور روایات فضل داره که اونی که فرز الهی داره که از درک دیگه پیغمبر سنت قرار و لذا شما در درک الهی شک نباید داشته باشید شکل این سرد در این دو ای یعنی آثارشون فرم این دو جعل با هم دیگه یکی از فرقاشون اینه اگر اون محرم شد به جمیع مرات ممنوع انسان و منها الهر اگر این محرم شد مثل اونی به اون درجه ممکن است این, این برگ شما خلید خروش بکنیم غیرت میتره ميت. میتره خلید خروش بکنیم کپروشن شد مطلب بیایم بگیم اونایی که تحریم رسول الله این جمعی ما تحریم الهی در این جان داره انما حرم الله یعنی نسبتش به خدا داره چون هم اشکاره درینی که حرام بشه ابقااش حرام نره نه این تعبیر رو در بواسطه اون اشاره ببینید که ما یک یوم من فساد و مخزن علم ما حرمه الله اگر من محرمه الله شد همه مراسلش حرامه افقایشون حرامه اما به نسبه به صور من محرمه ها رسول اون افقایش حرام نیست چون طبیعت جهل الهی اینطوره دیگه. چون محرومیت مطلق انسانه توش نماز نخونه نجیب هست منکه نمیشه بیع جایز نیست حفظ جایز نیست. و در رواستی تو هفته نقول خوندیم از ایشان تحجبه ایشون چون تیکه تیکی کردن و ساقه بعد میگه و امساقه امساقی هم حرامه ایشون متاسفانه امساقه رو نگه بردن در اینجا تیکی تیکی این تیکه اولی که ایشون بردن تیکه دوم و منها قوله وفیق و مایکون و منها وفیق و فساد نهزن و جمیع تقل و بفی من جمیع وجود حرکات کلها بعد یکیشون اشکال جمفیه این نسبت تغلب علیه همزممنو آن، خب خیلی عزیز بیشون هست که ایلاع قویی فمیل کویه، دو تو و انصاف کویه حرامت، انصاف دل بعد از انصاف فجی و تغلب میفی، این جنوت تغلب. و بعد از اون آماده. از که در رواج تغلب کنند، بلهازی این جایش واژهه. حالا اشکالی بیشان قطع اسنادم بحث دیگه. دید. این اشکال دوم هم از وارد نیست. او یادت واجب الكفر و شر این قریسه اولمه فی جمیع وجوه المعاصی او باب و بهره حق و به او حرامون به این چه امساک او او و انساک او انساک چه دیگه جدا جدا دنبله همند نه اینا رو جدا نکردم صناعت ارزش نداره کل منعی یعنی کل اون انساک هم حرامه الان عرض می‌کردم الان که یقواب الو الکفر این کلمات مسلمه لکه منابشه به یعنی هروزه کتب زلال این بابونی و حنا بهل حق نیست یقواب الو الکفر نیست کتب زلال خب بذ نشم چون باشه بذ نشم هر این مطلب ایشان هم یک مطلب خوبیه این مطلب اخیر ایشان بابونی و حنا این هم ما به طور کلی ارزش داریم که بیایم بگیم که در جاهایی که خیلی مطلب اهمیت داره ممکنه جمعی مناسبش حرام باشه جاهایی که اون در جرد اهمیت نیست اینطور باشه یه لوازی هستن در ذهن آدمی هر کدام به صورت مکاتبه است یه به امام نوشتم توت تو تو در در ازا توزه یا توته هر پنجویی صحیحش توزه نه توت ولی توت هم نوشته شده توزه دیگری دیگه‌ایه که بی بی‌حاصلم هست و چوب خاصی داره که قابلیت منبتکاری و تصرف درش داره غیر از این تووط مثارتم است به هر حال حالا از سود این بفروشند به کسی برای سلیب دیووسنامن ها صلیف هم و ننج. بعد در یک ساز ویدیو نامن ها بربط در بر آات مسیریف و ااششال ندا لا است. آی کویی و دیگران گفتن که این دووارد دللا و یک مطلب خیلی مهم بود مثل کلیب که رمز عبث این جایز نیست. اما اگه مثل بربر که فق پوچور این جایزه، مثلا شما کووب رو بفروشین، بیه کارخانهایی که الله سه باش درست رو سوند که مگر اشکال ندارد. اما چوب رو بفروشیم بیه کارخانهایی که سلیب درست میکنه، ب درست میکنه. این نمیشه. ایا که رایبرد نیست؟ هر سال امیدوار خوبیم داره، از دیر گیم دارستس بیشتر نداره. امده شن که فرق گذاشته بین سلیب چوب رو بفروشی به عنوان سلیب اون نه، با عنوان بربه هموندیشون ندارند. از این هم رو تو ما رو نوآزینه خوب به بحث نشه بریم اینو. اصل من در اونجا عرض کردم که بخاطر نتیجه اینه که شما اگر یه کارخونه‌ای که با این وسایل شما فرسون ماده تلاستیک می‌دیم باش، alate tasal plastik درست میکنه اشکال نداره. اما با اون فل... پلاستیک فرضش بود درست میکنه برای عبادات و و عبادت و حدود و منوز، اگه باطل باشه مثلا ادیان باطله،, مثل باطله شیکاوی، برای اونها قصداسون اشکال داره. بخاطر این بگم من در اونجا سوزیده بودم نه این توضیح کسی گلگرد از بندال دیگر نور. وقتی با خدا هست ما از که این فروش یک یا چود برای این بر بس و برای این کارهای حرام، اون هم حرام میکنه. همچنین که برای سلیب و حیاکل عبادت جایز نیست برای کارهای حرام اینطوری، برای آلات فسخ حجول، برای اون هم جایز نیست. اون آن برای بر هر دوست که اون پردازد. اون دوباره دزه نیم شبیه علم ایقوفه دیگه انصافه هم بالا علم ایقوف به ذهن ما چون روایت تو امروزه اینه به نحل سوال از کوفه نوشته، احتمالا پرینه ای در درست بوده که حالا نظر ما واضح هم هست اما خب انصاف رضیه در درست. این سوال از اهل ذمه است نه از مسلمان ها تو روایت اسم برده نشده مراد روایت این است که ما مثلا چون اهل ذمه مثلا مصیحی ها و مجوسی ها در کوفه و عراق زیاد هم کار میکردن، میذارین کارگرای زمین رو خیلی از مردمان اصلا مجوسیاشون تنعم بودن، به اینا ایل میگفتن. اینا کارگرای بودن که زمین کارشون از عراق خراجی بود، همراه زمینم هم جابجا میشدن که ما اصطلاحا امروزیا در زبان فارسی به اونها رعیت در مقابل ارباب یا در زبان انگلیسی فئودال در مقابل سر، اینا سر یا ایل جن یعنی. اینکه گفته ایل کافر کافر زخم، تصویر دیگری شده. اینها که بودن این کار میکنن خیلیشون اهل کتاب بودن مسیحی بودن در عراق کار میکردن، مجوسی بودن زردوشی بودن این در حقیقت سوالش اینه این همون تلازمیست که الان عرض کنم که سوال اینه مادام اینا اهل ذمه هستن در دولت اسلامی زندگی میکنن میتونیم ما چیزی به اونها بفروشیم که وسیله کفر یا شرک که از نظر ما جایز نیست اما چون دولت به اینها اجازه داده؟ مثلا در دولت اسلامی هم دارن اهل زلمه تو خونای خلوش این شراب بخورن حالا اون تلاظه رو در ذهب بگیریم حالا که دولت بهشون اجازه میده شراب بخورن این لازمش اجازه میده منم بونه شراب بخوشم من مسلمان بونه ها شراب بخوشن ابو همین هم گفته اشتال نداره به غیر احل زمین نمیشون میشین یه نوع استنغازه یه نوع استنغاز چرا باشه یه نوع تلازمه میگه شما نمیدید اینا میتونه شراب بخورن پس دل میشه میشونم شراب بخورن این همون تلازم و تسانخیز که کرده. کرد از امام سآل میکنه این مسیحی هستن اینا توی کلیسه هاشون سلید دارن اهل بربت و موسیقی و آواز هم هستن من به اینها چوب بفروشم باید سلیب بسازن اما می توانیم من نمیشن. من به اینها اینه به همون اهل ذمه چوب بزن که بربت بسازن میفهمن این میشه. شه دقت این وقتی به ما مسلمان ها نزن به مسلمان نمیشه. این چیزی که از کنی کنی کسی سالو نبخشه این در حقیقت اینه چرا؟ چون امام میخواهم درسته اینها در دولت اسلامی هست ما روایت داریم این سنی هم یه بابی در بخاری هم داره بخاری روایت نداره حتی های حتی های بخاریه بکر بخاری ما روایت داریم از رسولا از چیز هم نعرف شده از امام صادق که مثلا اهل زمه در اون زمان میسونسن روشونه یا موهاشونه بیرون بیارن سوال من حالا حالتی برای اونها کشف شعر جایزه یک جوزون نظر از, از شعرها ها. این همون تلاظه ایده از اهل سنت شد ایده زیاری چون نمیشه برای اون جایزه کشف شعر اما برای شما جایزه است مثل حسن بصری اصلا بخاری بابي قرار داده برای نظر به روس اهل ذمه روایت توسعه از, از فتاوای تابعین رو آورده ما هم داریم با صده هشت و صده نومه و مقدمات نکاح همینه جواز و نظر الى شور نسا احل زمه اصلا بباید داریم این سوال این بود خب شد حالا اهل ذمه آمزن تو دنیا اسلام زندگی میکن چهیسا دارن تو سلیب دارن من مسلمان میتونم به اینها چوب دفتوشن که میدونم با سلیب درست میکنن. یا آلات موسیقی دارن چوب بفروشن باش آسان اما می که ببینید سری جزء عبادات محتده است. درست اونا میتونی زندگی بکنن اما چون جزء عبادات مبتدعه است؟ بیگه ایش نهری تریون درست نیست شما نمیتونید چوب بفروشید برانه تقریب. اما بربت و موسیقی و خوانندگی خود بربت نمیشه به شروخ خوب دقت بکنید مثل ابو هنگیم که شراب رو اون نمیشه نزن اما از طرف دیگه ماده اولیه که او قدرت پیدا کنه ازش به او اشکال نداره چون ملکیت او محترمه مازان ملکیت او محترمه شما می چوب رو به او بفروشیم پس این روایت که آیان مثل آساد و دیگران مسلم گرفتن کرده تنسل کردن به نظر ما مفادش مال مسیحی هاست مال اهل زمه هست رفتی به مسلمان نداره نصفت به مسلمان هیچ فرق نمی کنه فروش چوب چه برای سلیب چه برای بربرد آلات و آلات موسیقی هیچ فرقی نمی کنه این برای اهل زنبه فرق میکنه و اونم نقطش استفاده تلازمه امام می کنه به بربر اشکال نداره نصف به او اشکال داره پس بنابراین این, این مطلبه که ایشون فرمونن بابونی و هنو بهله حد این حتبال و قاعده است انصافه ایشون م حفظ کتاب زلال بابونی و هنو به حق نیست بس در بخش گاهی وقت همیشه نیست راسته اما گاهی وقت هست به اطلاقه نیست این هم مناقشه سبا میشون اون چه که ما الان در باره یه حدیث توحفل قول داریم خیلی از مناقشه ایشان از که حدیث توحفل ریشه داره اما انصاباً الان اعتماد ما بر این حدیث به این مقدار مشکله بلکه اگر خوب تعمل بشه این حدیث درجه بندی در واقع. میگه هر چیزی که حرام شد این دیگه صناعتش حرام، بیع حرام، حبهش حرام، انصافش حرام، شراایش حرام، جنگ و اطراف این انصافاً با اثباتش با فواид بسیار مشکله ممکن است یک چیزی حبهش حرام باشه اما بیع جایز باشه، بیعش حرام باشه اما مثلا هبه ملازمه‌ای تلازمی دره اعتبار نداره، بیعش حرام باشه اما نگاه‌نده‌ی جستا ندشته این تلازمی در این مقام نیست بله خیلی بخوایم قائل به تلازم بشین اون جایی که حرم الله فی کتابه تعبیر به حرم الله شده شاید بشه قائل شد شاید انصافا لیکن این مطلب ما نحنفی که حفظ کتب زلال باشه این هم جزه یعنی کتب زلال این هم جزء اونها نیست یعنی جزء اونها هناوی لیکن در درد از مسادقش چرا چون کتب زران درجاتا متفاوت داره اما اطلاف داشته باشه انصافا نمیشه اصباح کرد پس اینکه این که خیلی حجیت این روایت الان با شرایطی که ما داریم زوغن بد نیست روایت اما انصافا به درجه حجیت دارسته که اصناده به امام صادق بریم. الان مشکل با این مدار شواهد شواهد شراوان نیست کمه انصافا مشکله و مضافن که این یک میذاره. هر چیزی که حرامیره بحث قانونی هم هست در دیونی هم هست ما همین میگیم هر چیزی که حرام تو تمامش اون شرامه خاصه این بحث برای دیگانگان حرام شده شما رافی نستجیو شخصی داد جاسوسی کرد طبق اون جاسوسی پولی گرفت طبق اون پول خونه‌ای خرید ببین همه شرامه هم رو دولت مصادره میکنه. چون خود جاسوسی که حرام بود مایه شرم تبع علی تمامه باشه این امکان داره در بعضی از درجات شما خودت اما التزام به جمیع محرمات، جمع به جمیع منیا آن التزام از استاد میگه فرمود در هم. مثلا خون حرامه، بگیم که یک قضیه اگر شما خون تو تازه نگرد داری حرام، چون ظاهر رودی نیست، این حرام، اگر که حرام، این هر که بدی نیستیم همه هر در دنیای غرب هم در رو که خون میزن دور نگه می‌داریم، نه چیزی که کسی دور میزن. اصلا چیز تو زندگی نگه اما این درست به حد فتوا الان مشکله تدرست میکنی؟ درست به حد فتوا که طبق این روایت بگیم هرچی که حرام شد دیگه بگیم تمام شعونش جمعی و تقلقه فیه ولی امسا تمام این عنابین هم حرام این رو الان نمیشه اثبات کرد. اگر روایت خود جفت حرفش حرف خوبیه و ما هم با این روایت میخوره اما با ظهر نمیشه طبق برس کرد